داستان بوغلمون یکی بود یکی نبود پادشاهی بود که همسرش موقع به دنیا آوردن بچهش از دنیا رفت بچه بیچاره زنده موند و با خواهرش که یه مقدار ازش بزرگتر بود به زندگی خودش ادامه میداد پادشاه بیچاره از این مصیبت خیلی ناراحت بود روزاشو با گریه میگذروند یک سال از این قضیه میگذشت ولی از ناراحتی پادشاه کم نشده بود تا اینکه بالاخره پادشاه هم از دنیا رفت. پادشاهی برادر داشت قبل از مرگش دو تا بچه های یتیمش رو به دست اون سپرد. برادر پادشاه قول داد و قسم خورد تا از بچه ها مراقبت کنه. اما تا پادشاه سرش سرشو گذاشت روی زمین برادرش فقط به فکر حفظ تاج و تخت خودش بود. اون پادشاه مستبدی بود. دو تا برادر زده توی زیر زمین حفظ می کرد. پسره وقتی ده ساله شد اموش اونو هر روز میفرستاد تو صحرا تا مراقب آدم هایی که روی زمین کار میکنند باشه. زندگی پسر هر روز همین بود تا اینکه بزرگ شد. بدون اینکه اونو خواهرش بدونن که شاهزادن هر دوشون رسیده بودن به سن 17-18 سالگی. حتی نمیدونستن که این پادشاه عموشونه و فکر میکردن فقط از سر تره ازشون نگهداری کرده. با نزدیک شدن کریسمس توی خونه ی همه ی آدما جشن و شادی بود. پیرزن مهربونی که از قازها و بوغلمونای زیادی نگهداری میکرد بعض پسر و دختر بیچاره رو میدید دلش به حال اونها سوخت و با خودش گفت فردا شب عیده اون بچههای بینوام تنها و بیکس و کارن. اگه پدر و مادرشون زنده بودن حتما براشون سفرههای رنگینی آماده میکردن. حتی منم که دارم با غاز و بوغلمونام زندگی میکنم برای خودم جشن میگیرم ولی اون ها چی بهتره یکی از این بوغلمونا رو ور و ببرم به دختره عیدی بدم. اینطوری اونا هم میتونم برای خودشون جشن بگیرن. خب، حالا باید چطوری این کارو انجام بدم؟ از درکه نمیتونم برم تو، چون نگهبان داره. از پنجره سداشت میکنم. خلاصه، پیرزنه صبح روز قبل از عید از خواب بلند شد و چاق و چله ترین انتخاب کرد و رفت سراغ دختره و پسره. شروع کرد به صدا کردن دختره از پشت پنجره. آهای دختر خانم، امروز شب عید و من میخوام این بوغلمون به بهت عیدی بدم تا به سلامتی من با برادرت نوشه جون کنیم. دختره با شنیدن صدای پیرزن پشت پنجره اومد. ازش تشکر کرد. و بهش گفت، خب در مقابل این من چی میتونم بهتون بدم؟ چیزی ندارم بهتون بدم؟ نمیخواست قبولش کنه. اما پیرزن مهربون انقدر خواهش و التماس کرد تا دختران رو قبول کرد. چون روزای عید بود، اون روز پسرک به دشت نرفته بود. قرار بود بره پیش پادشاه تا در مورد ماجراهایی که مردم، زمانی که روی زمینهاشون کار میکردن اتفاق افتاده بود برای پادشاه تعریف کنه. خواهرش منتظر بود. بوغلمون رو توی اتاق تاریخ گذاشت تا کسی اون رو نبینه. بوغلمون هم وقتی توی اتاق تنها شد با پنجه ها شروع کرد به کندن زمین. اینقدر کف زمین رو کند و کند و کند تا به دریچه رسید. دختره وقتی وارد اتاق شد یهو یه چشمش به دریچه افتاد. درش باز کرد. برادر دختره شب شده بود که به خونه برگشت. براش غذا آورده بود. برادر خواهر نشستن پشت میز و همین که داشتن غذا میخوردن. خواهرش گفت: نمی‌دونیدا داش امروز صبح یه پیرزن خوشقلب و مهربون برام یه بوغلمون عیدی آورد. برادرش گفت، کجا گذاشتیش؟ خوهرم جواب داد، تو اتاق تاریک قایمش کردم. الان میرم بهش غذا بدم. برادرشون خیلی خسته بود، به خواب رفت. خوهر رفت سراغ بغرمون. میخواست ببینه تو اون دریچه و اون زیرزمین چی میگذره. یه شم با خودش برداشت و، دریچه رو باز کرد. یه نردبون اونجا بود. دختره گفت حالا میرم پایین ببینم اونجا چه خبره. رفت پایین. یه دست لباس شاهونه دید و کلاه خود و شمشیر رو زره. فقط یه تاج کم داشت. دختره گفت اینا مال کی میتونه باشه؟ بعدم خودش جواب داد مال هر هرکی که میخواد باشه. اینا رو من برشون میدارم و بعد هم اونا رو با خودش به اتاقش آورد صبح وقتی که برادر از خواب بیدار شد چشمش به کلا خود و شمشیر و زره افتاد به خواهرش گفت اینا دیگه از کجا آمدن؟ خواهرش هم جواب داد نمیدونی بوغلمون زمینو زمین و کنده بود اون زیر یه دریچه بود من رفتم توی زیر و این فسایی رو از اونجا آوردم برادره با خوشحالی گفت اینا لباس های پادشاهیه. خواهرم گفت خب معلومه. ببین چه قشنگه. بپوش ببینم بهت میاد. ببینم تو تنه به برادر کمک میکرد تا لباس ها رو بپوشه. انقدر خوشحال شده بود که از خوشحالی براش دست میزد صدای ساز و شادی مردم هم به خاطر روزای عید به گوش می رسید. چون روز قبل از عید بود و ساز زنها اومده بودن زیر پنجره قصر پادشاهی رو ساز میزدن دختره پنجره رو چهار تاق باز کرده بود. برادرش توی لباس پادشاهی با کلا خود و شمشیر و زره جلوی همه مردم توی میدون شهر ظاهر شد. همه شروع کردن به فریاد کشیدن. با خودشون می این پادشاه ماست. این پادشاه ماست. نگهف های قصر با شنیدن داد و فریادهای مردم دستور آماده واش شده بودن. جمعیت زیادی جمع شده بود همه هل هل میکردند سر و صدا میکردند مردم هجوم آورده بودن به سمت قصر و داد و فریاد میزدند پادشاه با رنگ روی پرده رفت بالای پله ها و اومد جلو تا با مردم صحبت کنه اما مردم به خاطر سختگیریاش میخواستن سر به تنش نباشه و حالا که شروع کرده بودن میخواستن تا آخرش تموم کنن. پادشاه رو تو حد مرد باد مشت و سنگ گرفته بودن. اونقدر پادشاه رو زدن تا آقابت همونطور که لایقش بود از دنیا رفت. مردم تاج پادشاهی رو برداشتند و با جشن و شادی فراوان گذاشتند رو سر بردر زدش. پادشاه جدید بعد از اینکه کار پادشاهی خودش رو با ادارت شروع کرد همه خوشحال بودند و همه دوستش داشتند. خود پسرکم انقدر خوشحال بود که نزد کرد جمعه ها همه فقیرها رو به قصر دعوت کنه تا خودش بهشون صدقه بده. فقیرها از همه طرف می اومدن و از دستای خود پادشاه صدقه می گرفتن. خلاصه هر جمعه همین بسات بود تا اینکه یه روز پادشاه وسط فقیرا پیرزن کوری رو دید که همراه دخترکی کم سن و سال جلو می اومدن. وقتی به پادشاه رسیدن با صدایی که دل آدمو میسوزون میگفتن اعلی حضرت به این گدای کورم کمک کنید تا خدا بهتون عوض بده پادشاه به پیرزن صدقه میداد یه روز پادشاه به پیرزنه گفت زن مهربون هر جمعه بیاین پیش من اما از بقیه مردم فاصله بگیرین قاطی فقیرای دیگه نشین تا من بتونم شما رو ببینم پیرزنه و دختر هم دعاکنان رفتن پادشاه حسابی دلتنگ مونده بود با خودش فکر میکرد تا جمعه آینده که دیگه پیرزنه و دختره بخواد بیاد فکر می کنم 100 سال طول بکشه. در جمعه از راه رسید. پادشاه یکی یکی به آدما نگاه میکرد تا اینکه پیرزن مهربون و دخترش رو دید. که یکم دورتر ایستاده بودن. با دست بهشون علامت داد. یکمی بیشتر از همیشه بهشون پول داد و بعدم به دختره گفت این لباس پاره پوره رو بنداز دور و لباسای نو بخر. جمعه بعد وقتی میایی پیشم اونا رو بپوش. جمعه بعد دختره با یه دست لباس نخی و کفشهای نو پیش پادشاه اومد. پادشاه این بارم پول بیشتری بهش داد. و خلاصه هر هفته با یه لباس بهتری میومد تا اینکه لباس حریری که اونو مثل یک گل سرخ کرده بود پوشید. پادشاه بهش گفت روز جمعه تو نفر اول بیا جلو. پادشاه بیچاره آشق شده بود. تو خونه همش کلافه بود. خواهرش متوجه این موضوع شده بود و ازش پرسید چی شده برادر؟ و پادشاه گفت هیچی، فقط یکم سرم درد میکنه. ولی نتونست عشق خودش رو پنهون کنه و ماجرا رو برای خواهرش تعریف کرد. بهش گفت من به یه دختر فقیری علاقه مندم. میخوام باش ازدواج کنم. اولش فکر میکرد که خواهرش باش موافقت نمیکنه. اما خواهر که خیلی مهربون بود و برادرش رو دوست داشت، خودش تو فقر زندگی کرده بود، بهش گفت که باید دختره رو ببینه. روز جمعه برای دادن صدقه، خواهرم همراه پادشاه اومد. دختر فقیر نفر اول بود. قدر قشنگ بود که خواهر پادشاه بعد از دیدن دختره به برادرش گفت هر کاری که دلت میخواد بکن. میتونی باهاش عروسی کنی. روز عروسی پادشاه به خواهرش گفت من حالا عروسی میکنم. اما ما دوتا همون طور که بودیم با هم میمونیم. و تا همیشه بانوی این خونه ای. اما عروس که از گدایی به اعتبار رسیده بود خیال ورش داشت. نسبت به خوهر شوهرش که بانوی خونه بود و همه کلیدام تو دستش بود حسودی میکرد. کم کم نیونه شکراب شده بود عروس کاری کرد که همسرش کلیدها رو از خواهرش بگیره هر روز سرکفتش میزد و دختر بیچاره باز هم همیشه مهربون بود اما عروس برجنس انقدر تو گوش پادشاه خوند و خوند تا پادشاه آخرش به زنش گفت میگی من چیکار کنم زن؟ عروس هم گفت شب که شد دستور بده ببرنش توی جنگل و بکشنش. بر اینکه خیالمونم راحت بشه که کشته شده بگو قلب و دستاشو ببرن و پیراهن خونیشو برامون بیارن. پادشاه بیچاره نتونست بگیه نه. به خدمتکاراش دستور داد تا به شب خواهرش برام وسط یه جنگر رو همونجا از بین ببرنش برای نشونم قلب و دستا و پیرنش رو براش بیارن خدمتکارا همین کار انجام دادن دختر بیچاره رو نصف شب بیدار کردند و با خودشون به جنگل بردن دختر مهربون خیلی ترسیده بود به خدمتکارو گفت چی از جونم میخواین؟ اونها هم گفتن دستور برادرتونه ما باید اجراش کنیم و شما هم باید با ما بیان سوار کالسکش کردن و از شهر بیرون رفتن وقتی به جنگر رسیدن دوتان گهونا به خودشون گفتن چهجوری ما این دختر بیچاره را همینطور بیدلیل بکشیمش این دختر به جز مهربونی کار دیگه ای بلد نیست یکی از خدمتکارا گفت من که مطمئنن نمیتونم همچین برای سرش بیارم اگه تو میتونی انجام بده. ولی اونم نمیتونست این کارو بکنه. همون موقع صدایی به گوش خدمتکارا رسید. صدا مال شده ای بود که توی جنگل مونده بود. خدمتکارا فکری به ذهنشون رسید. تصمیم گرفتن بره رو بگیرند و اونو بکشن. به شاهصاد خانوم گفتن پیراهنتو در بیار، ما سر بزگاله رو می باریم و قلبش رو در میاریم. اما شرمنده ایم. باید دستایی تو رو هم ببریم. باید این درد رو تحمل کنیم. و خلاصه خدمتکارا پیراهن خونی دختره و قلب بره و دستای دختره رو برای پادشاه بردن. شاهزاده خانم بیچارم با خونی که از موچهاش بیرون میزد توی جنگل تنها مونده بود. وقتی که خدمتکارا پیراهن خونی شاهزاد خانم رو برای پادشاه بردن پادشاه نتونست جلوی رو بگیره هی hey, خواهرشو صدا میزد و میگفت چقدر از عروسیم خوشحال بودی و به خاطر فتنه های زن من بود که تو این بلا سرت اومد همینطور طور گذشته رو به یادش می آورد و ولی اما حیف که دیگه کاری از دستش بر نمیومد از کاری که کرده بود پشیمون بود. با صدای بلند گریه میکرد و خواهرش رو صدا میزد. شاهزاده خانم توی جنگل همونطور که خون زیادی ازش میرفت تنها بود. اما کار خدا بود که درست همون لحظه یه جوون نجیب سوار بر کالسکه از جنگل میگذشت. جوون با شنیدن صدای ناله نزدیک دخترک شد وقتی که اون رو دید ازش پرسید کی این بلا رو سرت آورده ورده؟ خانم جواب داد حیوانای وحشی دستان رو به این روز درآوردن. مرد نجیب یادش اومد که توی کالسکه چند متر پارچه داره پارچه ها رو آورد تا جلی خونریزی ریزیه دستای دختره رو بگیره بعدش هم دعوتش کرد توی کالسکه و اون رو با خودش برد این جوان نجیب مرد زنداری بود که بچه نداشت. فکرشو بکنید شاهزاده خانم توی خونه این مرد چه زندگی خوبی پیدا کرده بود. این مرد نجیب برای اینکه دختر بیچاره بی دست نباشه دستور داد تا براش یه جفت دست مصنوعی بسازن. شاهزاد خانم دیگه حدودا 20 سالش شده بود. با تموم دردایی که داشت اما مثل گل زیبا و تر و تازه و قشنگ بود یه روز جلوی پنجره ایستاده بود که یه پادشاه غریبه از خیابون رد میشد. شاهزاده خانم رو دید و ازش خوشش اومد و رفت پیش اون مرد و ازش خاسه کرد اون مرد پیشنهادش رو قبول کرد اما صادقانه بهش گفت که دستای این دختر مصنوعیه پادشاه هم گفت مهم نیست من این دختره رو با همین شکل و شمایلی که داره قبولش دارم و میخوام باهاش ازدواج کنم و اونو با خودم به قصرم ببرم. چند ماهی از ازدواج شاهزاده خانم و پادشاه میگذشت تا اینکه جنگ شد. پادشاه مجبور بود که به این جنگ بره. تو زمانی که پادشاه توی جنگ بود، شاهزاده خانوم دو تا بچه قشنگ که یکی دختر و یکی پسر بود به دنیا آورد. اما وزیراش که تحمل نداشتن یه زن بالایی سرشون باشه و به اونها دستور بده با خودشون فکر کردند که باید از دست این زن خلاص بشن تصمیم گرفتن که براش پاپوش درست کنن خیلی سریع نامهای برای پادشاه نوشتند و بهش گفتند همسرت به جای اینکه بچه به دنیا بیاره دو تا سگ کوچولو به دنیا آورده. منتظر دستور هستن تا ببینن که باید چیکار بکنن. پادشاه از ناراحتی جون لب شده بود. بهشون جواب داد که باید منتظر بشن تا من برگردم. اما وزیرا به هر قیمتی بود میخواستن از شرش آساد خانم خلاص بشن. به خاطر همین نصف شب بیدارش کردند و یه خورجین انداختن گردنشو و بچه هم گذاشن دو طرف خورجین. و وشاهزاده خانم بیچاره رو ورش کردن تو بیابون برهوت دختر بیچاره تک و تنها با دوتا بچه و دستای بریدش سرگردون شده بود نمیدونست باید چیکار کنه صد زیر گریه توی همون بیابون یه چاه آب پیدا کرد درلا شد تا آب بخوره همینطور که دورلا شده بود یکی از بچهها از توی خورجین افتاد توچا و رفت ته آب. حال و روزش رو تصور کنید دست که نداشت بچهشو بگیره. همون موقع پیرمرد خوش قیافه جروش ظاهر شد و بهش گفت دست بوریدت رو بکن توی آب هم صاحب دست میشی هم صاحب بچه. شاهزاد خانوم دست بوریده شو توی آب کرد و احساس کرد که دوباره صاحب دست شده. اون وقت فوری گرفت دقلش کرد یه دفعه اون یکی بچهشم افتاد توی آب. پیرمرد بازم بهش گفت دست بریدت رو بکن توی آب هم صاحب دست میشی هم صاحب بچه. و شاهصاد خانم دوباره این کارو انجام داد. و اینجوری شد که شاهصاد خانم دوباره سلامتیش رو به دست آورده بود. بچه هاش رو با خوشحالی بغل کرد و تونست به هر دوشون شیر بده. پیرمرد مرد مهربون خانم و بچه هاش رو بالای کوهی که اونجا بود و یه خونه قشنگ اونجا ساخته شده بود برد. بهش گفت اینجا باش که هیچی اینجا کم و نداری. من تو رو تنها نمیذارم. حالا بریم سراغ شوهر شاهزاد خانم. جنگ تموم شده بود که پادشاه برگشت به کشورش. وقتی زنش ندید حال بدی بهش دست داد. از همه پرسه می کرد برای هیچ کس از اونها خبر نداشت فقط بهش می یه شب با دو تا بچهش گذاشته و رفته پادشاه از اینکه نمیتونست زن و بچهش رو پیدا کنه معیوس نشد همه ی شهر رو زیر پاش گذاشت در زم برادر شاخصاد خانوم از لحظه ای که پشیمون شده بود که چرا اون بلا رو سر خواهرش آورده دیگه پاشا از خونه بیرون نذاشته بود از قصه کشتن خواهر معصومش گذاشته بود تا ریشش تا سر زانوهاش بلند بشه و زنش رو هم که مسبب این کار میدید، دستور داده بود که زندونیش کنن خلاصه وزیراش انقدر بهش پیله کردن تا یه روز برای اینکه حال و هواش رو عوض کنن بهش گفتن که به شکار بره پادشاهم قبول کرده بود انقدر غرق افکارش شده بود که توی صحرا از وزیراش دور شد و راه و گم کرد همون موقع بارون شروع شد پادشاه زیر درخت بلوط پناه گرفت انگار کار خدا بود همون دحظه سر اون یکی پادشاه که شوهر شاهزاد خانومم بود پیدا شده بود اون هم دنبال زنش میگشت دو تا پادشاه توی اون جنگل زیر درخت به هم رسیدند و پناه گرفته بودند. بار اولی بود که همدیگر رو میدیدن. با اینکه هردوشون هر دوشون پادشاه بودن اما هیچ وقت در طول زندگیشون همدیگر رو ندیده بودن. تا اینکه هر دو پادشاه از دور یه روشنایی دیدن. زیر بارون راه افتدن به طرف اون روشنایی. اون روشنایی و نور درست از خونه اون پیرمرد مهربونی بود که شاهزاده خانم و بچه‌هاش اونجا زندگی میکردن در زدن. پیرمرد در رو باز کرد. فوراً بهشون پناه داد. دوتا تا پادشاه با هم رفتن تو خونه پیرمرد. شاهزاده خانم با دیدن اون دو نفر اونا رو شناخت. اما اونو نشناختنش. پیرمرد به شاهزاده خانم گفت: چون بارون میاد و این دوتا آقا اومدند و احتیاج به سرپناه دارند، ما باید بهشون پناه بدیم. شاهزاده خانمم گفت، باعث خوشحالی منه. داشتن برای بچه ها غذا آماده میکردم. الان غذا حاضر میشه. بعد از اینکه شام خوردن، پیرمرد به دوتا دو بچه ها گفت، بچه های عزیزم، حالا یه قصه قشنگ تعریف کنیم برامون. دختر کوچولو که سر زبون دارتر بود شروع کرد به حرف زدن و تعریف کردن قصه مادرش از وقتی که نگهبونه اونو رو برده بودن به جنگل تا موقعی که عروسی کرده بود هور رو تعریف کرد برادره با شنیدن این ماجرا به خودش اومد و داد زد که این خواهر منه وقتی دختر کوچولو قصهش تموم شد پسرش شروع کرد به تعریف کردن مبقی قصه از وقتی که مادرش با پادشاه عروسی کرده بود تا موقعی که پیرمرد مهربون اونا رو به کوه آورده بود. همه رو تعریف کرد. پادشاه های دومم با شنیدن این داستان به خودش اومد و گفت: "پس این خانوم هم همسر منه. اینا هم بچه های منن خدای من مگه میشه؟ پیرمرد بعد از اینکه بچه ها حرفاشون تموم شد؟ شروع کرد به صحبت کردن. دوتا پادشاه گفت این داستان شماست هر دو پادشاه بعد از شنیدن داستان با خوشحالی شاهزاده خانم رو در آغوش گرفتند ازش تقاضای بخشش کردند پیرمرد مهربونم برای همه اونها دعای خیر کرد و ازشون خداحافظی کرد سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها